عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس بررسی بهترین و پرفروشترین کتاب دنیا کتاب مقدس هست. ضمن بررسی هامون به بیا در عهد قدیم رسیدیم. در جلسی گذشته بررسی کتاب کوچک یونس رو شروع کردیم. در این کتاب خدا مطالب زیادی داره که درباره اعلام بشارت انجیل خدا حتی با دشمنانمون به ما یاد بده کسانی که دوستشون نداریم ما ادامه این درس در مورد محبت خدا و های انسانی بیشتر یاد می‌گیریم. به دقت به دنبالی درس توجه فرمایید کتاب یونس فقط چهار باب کوتاه داره ما بالای باب یک نوشتیم اون نمیرود و به حضور خدا نمیاد. اما در مورد باب دو نوشتیم اون می آید. به دعای یونس در شکم ماهی گوش کنید؟ کتاب مقدس میگه و یونس از شکم ماهی نزد یهو و خدای خود دعا نموده و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم حاوی تزرر نمودم و آواز مرا شنیدی زیرا که مرا به ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود. جمعی خیزاب ها و موجهای تو بر من گذشت و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم لیکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد به بنیان کوها فرود رفتم و زمین به بندهای خود تا به عبد مرا در گرفت اما تو ای یهو و خدایم حیات مرا از حفره برآوردی، چون جان من در اندرونم بیتاب شد خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید آنانی که اباطیل دروغ را منظور می‌دارند احسان‌های خیش را ترک می‌نمایند اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود نجات از آن خداوند است بعد از اون خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی قَی کرد در باب اول یونس ما خدا را به عنوان خدای مهربان می بینیم که به نبیش می میده بره و برای نجات دشمنانش موعظه کنه خدا به یونس می میده به شهر نینوا پایتخت آشور پایتخت امپراتوری که پادشاهی شمال رو به اسارت برد بره خدا به این نبی فرمان میده برو به پایتخت دشمن و کلام خدا رو برای اونها موعظه کن یونس در باب چهار این کتاب به ما میگه او میدونست که خدا خدای بخشنده‌ای هست و میدونست که خدا محبت و قدرت داره که در نینوا بیداری بیاره. یونس میدونست که اگر مردم نینوا توبه کنن خدا اونها رو داوری نخواهد کرد. ها دشمن او بودن. او از اونها نفرت داشت. اون نمی خواست توبه ها رو ببینه. یونس نمیخواست که یک نهضت بشارتی بزرگ در نینوا شکل بگیره. یونس سوار کشتی شد که به ترشیش میرفت که نه تنها در مسیر مخالف نینوا بود، بلکه براساس نقشههای اون روز ترشیش اونقدر از نینوا دور بود که سفر به اونجا امکان نداشت. عجیبه که چطور وقتی او از اراده خدا سرپیچی میکنه، اتفاقا اونجا یک کشتی وجود داشته که به مسیر مخالف میرفته. این دلیل نمیشه که چون یک کشتی عازم حرکت به ترشیش در اونجا بود، اراده خدا برای یونس این بوده که سوار اون کشتی بشه. شیطان همیشه خوشحال میشه که جایگزینی برای کسی که از خدا فرار میکنه آماده کنه. وقتی یونس سوار کشتی عازم ترشیش شد، ما تمثیل زیبایی از اراده آزاد انسان رو میبینیم و اراده حاکم خدا رو خدا ما رو وادار به هیچ کاری نمیکنه چون ما مخلوقاتی با قدرت تصمیم گیری هستیم اما آنچنان فشاری بر ما میاره تا نهایتاً میبینیم که بهترین کار اینه که دنبال مموریت خدا بریم این اتفاقیه که در باب اول یونس میفته. خدا طوفانی میفرسته وقتی طوفان به اوج خودش میرسه یونس به آب انداخته میشه و چون خودش به چون خودش به ملوانان میگه اگه منو به دریا بیاندازید دریا آروم خواهد شد این چیزیه که بین من و خدای من هست خدایی که خالق دریا هاست به من معموریت داد که به نینوا برم اما من از رفتن به نینوا امتناع کردم و به این دلیل او طوفان فرستاد از این رو ملوانها او رو به دریا میدازن و خدا ماهی رو میفرسته که او رو میبله باب دو سراسر در شکم ماهی جریان پیدا میکنه در جلسه قبلی به شما تکلیفی دادم که مربوط به تجربیات یونس در شکم ماهی بود. یونس وقتی در شکم ماهی بود کلام خدا رو نقل میکرد. نوح آیه در باب دو هست که افکار یونس رو به تصویر کشیده. آیه ده به ما نشون میده که خدا به ماهی فرمان داد تا یونس رو در ساحل قایی کنه. در آیه نوح وقتی یونس صحبت میکنه او آیاتی رو نقل میکنه. فقط یک جای دیگه هست که میتونیم ببینیم کسی اینقدر انقدر از کلام خدا نقل میکنه در انجیل لوقا وقتی مریم باکره ماموریت یافت که مادر خدا بشه وقتی او بالاخره فهمید که بزرگترین معجزه خدا قرار هست در بدن او انجام بگیره او حدود ده آیه از کلام رو پشت سر هم ردیف میکنه ما این را تحت عنوان سرود مریم در کتاب مقدس شنیدیم برای این سرود موسیقی هم ساخته شده در اون دهایه مریم حدود 23 بار به عهد قدیم اشاره میکنه این نشون میده که مریم زن خداشناس روستایی بوده چون ذهن او انباشته از آیات بود همین چیز رو در مورد یونس هم شاهد هستیم یونس واقعا کتاب مقدس رو میدونست من تمام آیاتی رو که یونس در شکم ماهی نقل کرده منابعش رو ذکر میکنم او به ایوب پانزده سیزده، مراسی سه، اول سموئل سی، باز هم مراسی سه، ارمیا، اول پادشاهان هشت اشاره کرده و به علاوه اینها، پاراگراف دیگری هست که نشون میده یونس به چند مزمور هم اشاره کرده. یونس به این نه آیه باب دو اشاره کرده. او به مزمور صد و سی، مزمور هیجده، بیست و دو هم اشاره میکنه. مزامیر کتاب سرود قوم خدا بود. وقتی همه اینها رو کنار هم قرار میدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم. یونس در شکم ماهی دعا میکرد، در اونجا سرود میخوند و به آیاتی از کلام خدا در شکم ماهی اشاره میکرد. او همچنین در شکم ماهی برای خدا نظرهایی میکرد. در جلسه قبل گفتیم که برای باب یک میتونید بنویسید یونس به حضور خدا نمیاد و برای کار خدا نمیره. و برای باب دو میتونید بنویسید یونس به حضور خدا میاد اگرچه بعد از سه شبان روز ماندن در شکم ماهی تصمیم میگیره به حضور خدا بیاد. سه بار در باب دو یونس میگه من این کار رو خواهم کرد میگه دوباره به معبد قدوس تو نگاه خواهم کرد برای تو قربانی خواهم کرد و نظرهای خود رو عدا خواهم کرد اینجاست که بالاخره یونس میگه نجات از آن خداوند است و بعد از اون هست که خدا به ماهی فرمان میده که یونس رو در خشکی غی کنه تجربه یونس در شکم ماهی به لحاظ کاربردی به ما چیزی نشون میده که کاملا جدا از پیام اصلی یونس هست ما به این حقیقت لانه روباه یا الهیات تنگنا میگیم گفته میشه که در خلال جنگ جهانی دوم اکثر نبردها با حیله های جنگی انجام گرفته امروز کسانی رو میبینیم که در خدمت هستند و وقتی در تنگنا بودن نظر کردند که به خدمت برند مردم معمولا از الهیات تنگنا انتقاد میکنند اما من خدا رو به خاطر این شکر می کنم که این الهیات رو به وجود آورده. بسیاری از زندگی ها در دوره بحران ها تغییر یافتند. در بحران هایی که مردم در تنگیا بودند. خب در یونس با بدو چیزی رو داریم که میتونید بهش الهیات درون شکم ماهی بگید که دقیقا مثل الهیات تنگیا هست. اگر تصویر واضحی از شکم ماهی داشته باشید می میبینید که یونس با بحران بزرگی در شکم ماهی مواجه بوده. این الگویی از کار خداست که وقتی خدا در زندگی کسی کار میکنه دیده میشه. شما این الگو رو بارها در کتاب مقدس میبینید. این الگو رو در کتاب ایوب هم میبینید. این الگو در کتاب انبیای دوران اسارت هست و در اناجیل عهد جدید هم وجود داره. خدا طوفانهایی رو به وجود میاره و یا دست کم به اونها اجازه میده در زندگی ما ظاهر بشن. طوفان بحرانی مثل شکم ماهی و تنگیه هست. حالا وقتی خدا به طوفان ها اجازه میده و یا اونها رو میفرسته تنها چیزی که از قومش میخواد اینه که به اون طوفان ها واکنش درست نشون بدن وقتی خدا واکنش صحیح رو در مقابل بحران ها از فرزندانش میبینه معمولا اینجاست که قسمت سوم الگو رو میبینید او رو از طوفان نجات میده خدا اغلب اوقات قومش رو از این طوفان ها نجات میده میبینید که با ایوب این کارو میکنه ایوب سزاوار طوفان خودش نبود و این بخش مهم پیام کتاب ایوب بود خدا از ایوب مطمئن بود و میدونست که در طوفان رنج ها واکنش او درست خواهد بود خدا اجازه داد ایوب رنج بکشه وقتی بالاخره خدا واکنش صحیح را در مقابل طوفان رنج از ایوب دید او را از رنجهاش نجات داد و ایوب به خاطر تجربه رنج هاش مرد بهتری شد در باب 11 انجیل یوحنا داستان زیبایی میخونیم که چطور عیسی مریم و مارتا این دو خواهر رو دوست داشت او اجازه میده این دو خواهر با بزرگترین طوفان زندگیشون با مشکلی لاینحل مواجه بشن بیماری و مرگ برادر اونها برادر اونها بیمار بود و مرد اونها دنبال عیسی فرستادند اما عیسی آمدن جایی که بود توقف کرد او میدونست که برادر اونها خواهد مرد عیسی برای نجات برادر بیمار اونها از مرگ ندوید عیسی صبر کرد تا اینکه طوفان بیماری تبدیل به طوفان مرگ بشه بعد او وارد شد و واضحه که وقتی او وارد بیت انیا شد میخواست که واکنش درست از این دو خواهر در مقابل طوفان بیماری و مرگ ببینه وقتی عیسی واکنش درست اونها رو دید بعد از اون با قیام برادرشون از مرگ اونها را از طوفان نجات داد الگو رو ملاحظه کنید الگوی طوفان واکنش و نجات شما این الگو رو در سرتاسر سر کتاب مقدس می‌بینید این الگو رو در داستان پسر گم شده هم میبینید پسر گم شده به خاطر سرکشی خودش در طوفان بود. طوفان پسر گم شده خوکدانی بود. بالاخره پسر گم شده از کشور دور و از خوکدانی نجات پیدا کرد. اما پسر گم شده کارهایی کرد که سزاوار بودن در کشور دور و خوکدانی بود. پسر گم شده تا زمانی که به خودش نیومد و واکنش درستی به طوفان خود ساخته نداد، نجات پیدا نکرد. تجربه پسر گم شده همون چیزیه که در انبیاء عهد قدیم وقتی که اونها در مورد اسارت بابل و آشور صحبت میکنن میبینید. خدا اجازه داد طوفان اسارت بابل به مدت هفتاد سال ادامه داشته باشه. وقتی خدا واکنش درست قوم خودش رو دید، اونها را از اسارت بابل نجات داد و اونها همونطور که ارمیا میگفت، تبدیل به ظرفهای تازه‌ای شدند. اینها همون چیزهایی بودند که برای یونس هم در شکم ماهی اتفاق افتادند. خدا گفت برو، یونس گفت نه، خدا گفت خواهیم دید. خدا دقیقاً به یونس فشار میاره و فشار هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه یونس سر از شکم ماهی در میاره. بعد از درون شکم ماهی او سه بار میگه باشه، خواهم رفت. وقتی که ماهی یونس رو به خشکی قیم میکنه، باب اینطور این طور شروع میشه. پس کلام خداوند برای بار دوم بر یونس نازل شده گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن و از را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن آیا خدا رو از این بابت شک نمی‌کنید بعضیا میگن قبل از اینکه همه کلام خدا رو حداقل یک بار بشنون هیچ کس نباید کلام خدا رو دوباره بشنوه حالا من نمیدونم چرا اون اشخاص این حرفو میزنن چون معمولا با خودم فکر میکنم چند نفر اولین بار که کلام خدا رو شنیدن به اون ایمان آوردند خیلی وقتی اولین بار کلام خدا رو میشنوند با اون ایمان نمیارند و خیلی ها به دعوت خدا در بار اول پاسخ نمیدن. علا حاکمیت خدا همونطور که در نخستین آیه بابسه به تصویر کشیده شده، آیا شما به خاطر صبوری و پوشکار خدا شک گذار نیستید؟ پس کلام خداوند برای بار دوم بر یونس نازل شده گفت، حالا خدا خیلی در مورد یونس صبور بود. خدا یونس رو توی منگنه میذاره و خدا از این منگنه استفاده میکنه تا واکنش صحیح از یونس دردیافت کنه. بعد وقتی یونس واکنش درست نشون میده و قلبش آماده هست که در راستای اراده خدا بره خدا صبورانه و مقاوم منتظر او هست. پس خدا به نبی خودش برای دومین بار معموریت میده. مأموریت خدا اینه. برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وز را که من به تو خواهم گفت برای ایشان ندا کن. بسیاری از مردم وقتی به باب سه کتاب یونس میرسند و اون نهضت عظیم بشارتی در نینوا رو میبینن تعجب میکنن که چطور تمامی یک شهر بزرگ به زانو میافتند این فقط به خاطر یک نبی کوچکه که به اونها میگه من همه چیز رو در این شهر نابود خواهم کرد این تقریبا تنها چیزیه که به نظر میرسه یونس میگه به هر حال واضحه که موعظه یونس بیش از اینها بوده خدا به او مأموریت میده که پیغامی رو که خدا داده برای اونها اعلام کنه. در این باب گفته شده که یونس چیزی رو که خدا به او گفته بود دقیقاً برای اونها موعظه میکنه. یونس کلامی رو برای اونها میگه که خدا به او گفته بود. یونس احتمالاً واعظ باشکوهی بوده. وقتی باب سه کتاب یونس رو ملاحظه میکنید، میتونید بگید یونس به نینوا میرود. یونس از کلام خدا اطاعت کرد و به نینوا رفت. نینوا شهر بزرگی بود. گشتن تمام شهر سه روز طول می یونس مسافتی یک روزه در شهر طی میکنه و اعلام میکنه فقط چهل روز فرصت باقی هست. نینوا نابود خواهد شد. اهل نینوا به کلام خدا ایمان میارند. اعلان روزه میکنن و همه اونها از بزرگ تا کوچک پلاس می پوشن. وقتی کلام خدا به گوش پادشاه نینوا میرسه، او از تختش بلند میشه. ردای پادشاهیش رو در میاره و پلاس میپوشه و خاکستر نشین میشه بعد اعلامیهای در نینوا صادر میکنه و میگه و پادشاه و اکابرش فرمان دادن تا در نینوا در دادن و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استقاسه نمایند و هرکس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت نماید کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از هدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد در باب سه، یونس با ما در مورد نهضت بشارتی که راه افتاده صحبت میکنه. وقتی که بلیگر به شهر بزرگی میره و می جمعیت زیادی رو جمع کنه، احتمالاً حتی شاید بیش از یکصد هزار نفر همه ما شگفت زده میشیم. اما اگر اعلامیه رو که در اون شهر با چنان جمعیتی خوانده شد که منجر به اون نهضت شد مقایسه کنید، میفهمید که کسانی که در اون نهضت حضور نداشتند میلیون نفر بودند ما برای جمعیت 100 هزار نفری که حاضر میشن شک گذاری میکنیم اما هنوز میلیون ها نفر هستند که در اونجا حاضر نشدن این یک چالشه از شما میپرسم که چه حقیقت روحانی و کاربردی از تجربه یونس به دست میاری میتونم ازتون یک سوال بکنم آخرین بار کی بوده که شما کلام خدا رو با کسی در میون گذاشتید؟ آیا تا حالا کلام خدا رو با کسی در میون گذاشتید؟ یونس نبی متعصبی بود به این دلیل نمیخواست به نینوا بره متعصب بودن یعنی پیش داوری کردن آیا این امکان هست که شما کلام خدا رو با کسی در میون نذارید چون اونها رو پیش داوری میکنید و واکنش اونها رو از قبل پیش خودتون حدس میزنی اگر خدا اونقدر مصمم بود که یونس رو به نینوا بفرسته آیا فکر نمی کنید که او مصمم شما رو هم وادار کنه که به مردم بشارت بدی شما به افراد محدوده خودتون دسترسی دارید که هیچ کس دیگه ای نداره. شاید شما تنها شانس اون افراد برای شنیدن کلام خدا هستید. آیا در طی این سالها در زندگیتون این سه کلمه رو گفتید؟ من نخواهم رفت؟ آیا شما نمونه یونس رو در باب دوم نبوت او پیروی می کنید و امسال این دو کلمه رو در زندگی خودتون می گید؟ خواهم رفت؟ در طول تاریخ بشارت فقط یک نهزت بشارتی هست که در اون میبینیم تمامی شهر از شاه گرفته تا پایین ترین رده های مردم در اون نهزت شرکت میکنه در طول تاریخ بشارت فقط یک نهزت بشارتی هست که در اون میبینیم تمامی شهر از شاه گرفته تا پایین ترین شخص به لحاظ اجتماعی تبدیل یافتند این چیزی بود که در شهر نینوا پیش اومد نهزت بشارتی که در باب کتاب یونس شهر داده شده آشکارا یک معجزه بزرگه شاید یک تعبیر از کل این نسبت بشارتی این واقعیت باشه که شاه تبدیل شد در بسیاری از فرهنگ ها وقتی یک فرمان روای مطلق وجود داره همه چی از بالا به پایین شکل میگیره رو در کوه های شمال فیلیپین میشناختم که در جایی به نام ناتونن کار میکرد و سعی داشت که با مردم بالانگوا تماس پیدا کنه اسم او یوان بود اما در زبان بالانگوا این اسم وامی تلفظ میشه وقتی وامی با رئیس قبیله ملاقات کرد او گفت وامی من کتاب خدا رو خوندم من متوجه شدم که تو نمیتونی کتاب خدا رو تعلیم بدی او فکر کرد که یقینا این پایان خدمت او هست از این رو به او گفت آماسال چرا من نمیتونم کلام خدا رو تعلیم بدم رئیس قبیله گفت چون که من کتاب خدا رو خوندم و کتاب خدا میگه که زنان نمیتونن کتاب خدا رو به مردان تعلیم بدم. از تو کلام خدا رو به من تعلیم بده و من اون کلام رو به مردم تعلیم خواهم داد. وامی از شادی در پوست خود نمی گنجید. در فرهنگ ای یک ساختار قطعی قدرت وجود داره. وقتی رئیس قبیله شروع به آموزش کلام خدا کرد، تمامی اعضای قبیله به مسیح ایمان آوردند. تمامی افراد در اون قریه ایمان آوردند چون از طرف رئیسشون اعلام می شد وامی احساس میکرد که اون واقعیت روحانی تا سالها بعد واقع نمیشه اما اون به تحقق پیوست و حالا در اون روستا در کوهستانهای شمالی فیلیپین هزاران نفر ایماندار هستند که مسیح رو میپرستند اونها در گروه بزرگی یک شنبه اول ماه رو گرده هم میان و بقیه یک شنبه ها در گروههای کوچک در دهکده هاشون جمع میشن وقتی رئیس قبیله تبدیل شد و کلام خدا رو تعلیم داد اشتیاق عظیمی برای مسیح در بین اعضای قبیله پدیدار شد خب شاید در نینوا هم چیزی مثل این اتفاق افتاده شاید وقتی پادشاه به خدا ایمان آورد باعث پیدا شدن این نهزت بشارتی گردید وقتی کتاب یونس رو میخونید وقتی بزرگی معجزه باب سه رو درک میکنید هنوز کل پیغام کتاب یونس رو نگرفتید به نظر من پیغام واقعی کتاب یونس در باب چهار هست که میبینیم یونس به این نهزت بشارتی معجزه آسا چه واکنشی نشون میده شاید فکر کنید یونس وقتی فهمید که در طول تاریخ به عنوان بزرگترین مبشر ماندگار خواهد بود باید خیلی خوشحال بوده باشه شما فکر می‌کنید که به عنوان نبی خدا یونس باید میگفت چه با خدا حتی نینوایی ها رو هم دوست داره قدرت خدا محدود به یهودیان نمیشه خدا عملا میتونه قوم های غیر یهودی رو هم نجات بده این یک معجزه است اما واکنش یونس اینطور نبود. نفرت یونس از نینوا باید خیلی قوی بوده باشه چون میخونیم که نجات نینوایی ها یونس رو بسیار خشمگین میکنه. یونس عملا نزد خداوند شکایت میکرد. نزد خداوند دعا نموده گفت آهی خداوند آیا این سخن من نبود هینی که در ولایت خودم بودم؟ و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم زیرا می‌دانستم که تو خدای کریم و رحیم و غضب و کسی احسان هستی و از بلا پشیمان میشوی. پس پس ای خداوند جانم را از من بگیر زیرا که مردن از زنده برای من بهتر است بعد خداوند از یونس خواست از شهر بیرون رفته به طرف شرقی شهر بشینه و در اونجا سایبانی برای خودش بسازه و زیر سایش بشینه تا ببینه بر شهر چه واقع خواهد شد یهو و خدا کدوی رویانید، و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده او را از حزنش آسایش دهد. و یونس از کدو بی نهایت شد. اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد. و چون آفتاب برآمد خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بیتاب شده برای خود مسئلت نمود که بمیرد. او گفت مردن من از زنده ماندن برای من بهتر است. خدا به یونس جواب داد آیا سواب است که به جهت کدو غذبناک شوی؟ او گفت سواب از که تا به مرگ غذبناک شوم. خداوند گفت دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید؟ آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیش از 120 هزار کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوانند داد و نیز بهایم بسیار شما تعجب می کنید که مشکل این مرد چیه این نبی خدا چه مشکلی داره که اینطور واکنش نشون میده خب واضحه که یونس مشکلی داره و اون مشکل چیزیه که امروز بهش تعصب میگی یونس نسبت به نینوایی ها غرض داشت او از اونها نفرت داشت به عنوان یک یهودی او تأثبی مادرزادی نسبت به نینبایی ها داشت چون اونها غیر یهودی بودند یهودیان غیر یهودیان رو سگ خطاب می کردن. در نظر اونها هر شخص غیر یهودی فقط به اندازه یک سک آگاهی روحانی داشت پس یونس هم این تعصب رو داشت و مهمتر از همه این بود که نینبایی ها دشمن او بودند شاید یونس شهادت رنج های وحشتناک مردم به دست نینوائی رو شاهد بوده. شاید به یکی از اعضای خانوادش ظلم شده بوده. یونس برای نفرت خودش عذر موجهی داشت. به این دلیل وقتی خدا نینوائی رو نجات داد یونس عصبانی بود. ما می بینیم که خدا یونس رو خیلی تحمل می کنه و به او درسی عملی میده. او بوته کدو رو که بالای سر او رویده بود از بین می بره. بعد یونس عصبانی میشه و خشمش رو نشون میده. خدا اون بوته رو به عنوان درس عملی به کار میگیره و میگه یون یا تو حق داری به خاطر بوته ای که سایبان تو بود و هیچ زحمتی برای اون نکشیده بودی عصبانی بشی اون بوته عمر بسیار کوتاهی داشت آیا من حق ندارم که نگران اون کسانی باشم که در نینوا هستند هزار نفر از اونها دست چپشون رو از راست تشخیص نمیدند کسانی که هنوز به سن تکلیف نرسیدند و کودک هستند محققین بر این اساس جمعیت نینوا رو بین یک تا دو میلیون نفر تخمین میزنند. در باب چهار کتاب یونس، خدا عرضش های ترین نبی رو به چالش میگیره. وقتی شروع به بررسی کتاب انبیا کردیم، گفتم که یکی از وظایف انبیا این بود که موانع و مشکلاتی رو که مانع کار خدا در دنیا بودن از سر راه برداره. گفتیم که وقتی کار خدا در دنیا با مانع برخورد میکنه وظیفه انبیا این بود که به حضور خدا ناله کنند تا اینکه خدا اون مشکل و مانع رو از سر راه کارش برداره و کار خدا بتونه از سر گرفته بشه آیا مانع و مشکل کار خدا رو در این کتاب میبینید؟ مانع کار خدا آشکارا تعصب این نبی و قوم خدا هست حالا یونس تنها شخص متعصب در اسرائیل نبود تمامی قوم خدا متعصب بودند من فکر میکنم که خدا در کتاب یونس به ما میگه که باید مشکل تعصب برداشته بشه تا اینکه خدا بتونه توسط ما در راهایی که او میخواد کار کنه. یک بار دیگه پیغام یونس که موافق بسیاری از دیگر کتاب‌های نبوتی هست، اینه که خدا مردم رو دوست داره. خدا همه مردم رو دوست داره. خدا پوستان و سرخ پوستان و زردپوستان رو دوست داره. او سفیدپوستان رو دوست داره. خدا همه مردم رو دوست داره. اینجا یک حقیقت زیربنایی هست که در کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه میبینید. تمامی این انبیاءی که آتش و گوگرد و تاریکی و محشر رو نبوت میکنن همه اونها پیغام خدای محبت رو موعظه میکنن. حالا میبینید که چرا گفتم پیغام واقعی کتاب یونس ارتباط زیادی به ماهی که مردم رو میبلعه نداره. پیغام کتاب یونس پیغامی در مورد محبت خداست. وقتی میبینید که در این کتاب فقط چهار بار به ماهی 17 بار به یونس و 35 بار به خدا اشاره شده، پیغام واقعی کتاب یونس رو میتونید ببینید و درک کنید. نقش اصلی در کتاب یونس به احده کی هست؟ نقش رهبری به احده خدا هست. محبت خدا مشخصه اصلی خدا هست که میبینید که در این کتاب عمل میکنه. پیغام کتاب یونس اینه که خدا نمیتونه اگر خادمینش متاسب باشن، محبتش رو از طریق اونها ابراز کنه. اگر خدا ها رو دوست داره و نبی از ها نفرت داره، خدا چطور می‌تونه توسط او کار کنه؟ خدا چطور می‌تونه محبتش رو توسط کسی که اصیل تعصب هست به تمامی مردم ابراز کنه؟ اگر وقتی کتاب یونس رو میخونید این سه سوال رو بپرسید، او چی میگه؟ معنیش چیه؟ معنی اون برای من چیه؟ به یکی از مهمترین دیدگاه‌هایی که یونس در کتاب خودش نوشته دست پیدا می‌کنید. من همیشه تحت تاثیر این واقعیت بودن که نویسندگان عهد قدیم سعی نمی‌کردن خودشون رو خوب جلوه بدن. اونها تقصیراتشون رو رنگ و آب نمیدادن. رو راست بگم، کتاب یونس یونس رو شخصی نادان جلوه میده و یونس این کتاب رو نوشته. یونس داستان خودش رو نوشته. یونس سعی می‌کنه به ما چی بگه؟ او به ما میگه که چه آدم سرکشی بوده. او به ما میگه که چقدر متأسف بوده و به ما میگه که خدا چقدر وفادارانه با تمام این سرکشی ها و تعصباتش در او کار میکنه یونس به ما میگه که او محبت خدا را نسبت به مردم در دل نداشته مخصوصا نسبت به نینوایی ها اما برعکس خدا نسبت به اونها محبت داشته به طور خلاصه یونس حقایق روحانی رو در این کتاب کوچک نبوتی با ما در میون میذاره حقایق روحانی یونس اینها بودند من وقتی در نینوا بودم محبت آگاپه نبودم اما خدا بود و او با من بود وقتی در نینوا بودم نمیتونستم نینوایی ها رو دوست داشته باشم اما خدا میتونست و او با من بود وقتی در نینوا بودم نمیخواستم نینوایی ها رو محبت کنم اما خدا میخواست و او با من بود من وقتی در نینوا بودم نینوایی ها رو دوست نداشتم اما خدا دوست داشت و او با من بود این حقایق روحانی پیغام کتاب یونس بود محبت خدا برای تمامی دنیا خدا همیشه تمامی دنیا رو محبت کرده. وقتی خدا به ابراهیم مأموریت داد که پدر این قوم برگزیده بشه، فراموش نکنید که خدا به ابراهیم دقیقا این چیز رو گفت: "توسط تو تمامی قوم‌های روی زمین برکت خواهند یافت." خدا همیشه تمامی قوم‌های زمین رو مد نظر داشته. مشکل خدا در میون گذاشتن اون رویا با نبی سرکش و متعصبش بود. بعضی از محققین اعتقاد دارند که کتاب یونس حقیقت دیگری هم به ما یاد میده و اون حقیقت قیام هست. این محققین اعتقاد دارند که وقتی یونس در شکم ماهی بوده عملا مرده بود. یونس گفت من از حیات جدا شدم و در دیار مرگ اسیر بودم اما تو منو از آرواره مرگ خلاص کردی. حالا اگر عملا یونس در شکم ماهی مرده بود و از مردگان قیام کرد پس کتاب یونس نه تنها محبت خدا رو به ما نشون میده و چگونگی غلبه بر تعصب رو نشون میده بلکه کتاب یونس تصویری از مرگ و قیام هم هست. ایسا گفته همونطور که یونس در شکم ماهی بود پسر انسان بر روی زمین آنگونه خواهد بود. براساس سخنان یونس و ایسا بسیاری بر این باورند که کتاب یونس نظریه قیام را هم تعلیم میده. جمبندی پیغام کتاب یونس اینه. محبت خدا برای دنیای گم شده کتاب یونس یک کتاب خدمتی هست کتاب یونس بر گناه قرازورزی نسبت به نینوائیان یا هرکس دیگه ای تمرکز کرده کتاب یونس پیغامی از مشیت الهی و حکمرانی خدا در شرایط زندگی ما هست و بالاخره کتاب یونس تصویری از مرگ و قیام را به ما ارائه میده میدونید چرا نخواستم به فرم ادبی کتاب یونس بپردازم چون اهمیت کتاب یونس و یا هر کدام از کتابهای مقدس حقیقتی است که اون کتاب تعلیم میده و اینکه اون حقیقت چه مفهومی برای من و شما داره و اون حقیقت به من و شما چه چیزی تعلیم میده وقتی کتاب یونس رو میخونید از خودتون بپرسید آیا من متأصب هستم آیا به خاطر تعصب من کار خدا در این دنیا متوقف میشه وقتی تجربه دعوت خدا رو داشتید، آیا گفتید که نخواهم رفت؟ وقتی کارهایی رو که خدا در زندگی شما کرده ملاحظه می کنید، آیا فکر نمی کنید که الان زمانی هست که باید بیستید و به خدا بگید، خواهم رفت؟ بدونید که خدا شما رو دوست داره، خدا میخواد که شما داستان محبت او رو بدون تعصب با دیگران در میون بذارید. پیغام کتاب یونس برای شما این هست. آیا این کار رو خواهید کرد؟ دوستان یونس مشکلی داشت که اکثر ما با اون مواجه هستیم. اون مشکل اینه که ما تبعیض قائل میشیم. مهم نیست که در کجای دنیا باشه ما حتی در شهر خودمون هم نسبت به افراد مشخصی تمایله بیشتری داریم و نسبت به بعضی ها به هر دلیلی تمایلی نداریم. در حالی که خدا همه رو دوست داره و اون میگه که نمیخواد کسی حلاک بشه. بلکه میخواد که همه توبه کنند و به عیسی مسیح ایمان بیارند. محبت ما میتونه خیلی مشروط باشه. در حالی که خدا میگه باید مانند او محبت کنید. از خدا بخواید که کمک کنه محبت او رو بهتر درک کنید تا اینکه بتونید محبت او رو این هفته با کسانی دیگه ای تقسیم کنید. حتی کسانی که دوستشون ندارید. تا برنامه بعدی امیدوارم محبت او و شادی او شما رو پر از شجاعت و امید کنه